کس نیست که افتاده آن ظلف دوتا نیست در ره گذر کیست که دامیز بلا نیست چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست روی تو مگر آینه لطف الهی حقا که چونین است و در این روی و ریا نیست نرگس طلبت شیوه چشم توز زهی چشم مسكين خبرش از سر و در دیده حیانیست از بحر خدا زلف مپیران که ما را شب نیست که صد اربده با باد سبا نیست بازا که بیروی تو ای شم ادلف روز در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست دی می شد و گفتم سنما عهد به جایاب گفتا غلطی خاجه در این عهد وفا نیست اگر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست آشق چه کند گر نکشد وار ملامت با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست در سومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه عبروی تو مهراب دعا نیست ای چنگ فرو برده به خون دل آفز فکرت مگر از غیرت قرآن خدا نیست